قبل از تولد من روابط بین پدر و مادرم لطفی نداشت اما پس از آن بین آن دو روح سازش و گذشت برقرار شد کودکی آن دو را به هم مربوط میزاخت خانواده پدید آمده بود نانا به من میگوید که در آن هفته های خوش مثل اینکه پدرم به کلی عوض شده بود کمتر لج لش می کرد آرام تر بود اما تا آنجا که مربوط به من است من گمان می کنم که در آن مرحله من برای او فقط مظهری از زندگی خانوادگی به شمار می رفتم مثل اینکه او مرا چیزی مقدس می دانست برای اینکه که هرگز مرا بغل نمی کرد. البته کارش در این موقع زیاد بود در استودیوی خود روی فیلم جویندگان تلاکار می کرد ما خیلی نمی و اما هر روز صبح پیش از آنکه از خانه بیرون برود به اتاقی که من و نانا در آن می خوابیدیم و با من حال و احوال می کرد. شب هم موقعی که به خانه می آمد به همان ترتیب سری به من می زد و مرا نگاه می کرد. گرچه پدرم درست نمی با من چه کند اما از اینکه پسری دارد به خود می بالید. بارها او این غرور خود را به داشتن پسری نشان میداد و این کار را هم به مختزای طبیعت خود دنکی شد وار انجام میداد. یک روز صبح که سر کار میرفت به گهواره من سر زد. من که سراپ لخ در آن خوابیده بودم با سهلنگاری کودکی خود لباس او را آلوده کردم. پدرم به خود زحمت آن را نداد که لباسش لباس سفیدی را که تازه پوشیده بود و اکنون آلوده شده بود عوض کند. همونطور به استودیو رفت و لکه های زردی را که روی لباسش بود مانند نشان افتخار عرضه می کرد. وقتی از او پرسیدند که لباسش چه شده است، سینه خود را مثل اینکه همین الان به آن مدال آبیختند عقب برد و گفت پسرم این کار را کرده است، خوشمزه نیست؟ در سی مارس 1926 برادرم سیدنی در اتاق خواب وسطی خانی چاپلین به روی تپه ها متولد شد. آرزوی پدرم به داشتن دختری این بار چنان نیرومند بود که از پسر بودن سیدنی عصبانی شد. اما خیلی زود این گناه برادرم را بخشیدند. اسم سیدنی را از روی نام اموسی سیدنی سیدنی ادوارد چاپلین گذاشتند. مادرم می‌خواست اسم او را توماس ادوارد بگذارد، اما این بار بورد با پدرم بود. تولد سیدنی هم هیچ گونه ناراحتی نداشت. از اول سال و بود. برای مراقبت از او پرستاری آوردند و او در همان اتاق خواب وسطي با مادرم ماند. حالا دیگر پدرم موقع رفتن سر کار به دو جا سر میزد. اول سراغ سیدنی می رفت و بعد سر وقت من میامد. سپس از پله ها پایین می رفت و از در خارج می و یک راست به سوی استودیو راه می افتاد. موقع برگشتن از کار همین ماجرا اکرار می شود. اندکی بعد از تولد سیدنی من برای اولین بار با این ولگرد کوچولو که قرار بود در سالهای بعد نقش بزرگی در زندگی من ایفا کند آشنایی حاصل کردم اواخر روز بود سیدنی با مادرم در رخت خواب خوابیده بود من روی زانوی نانا نشسته بودم که در اتاق باز شد و پدرم وارد شد آنقدر خسته بود که لباسهایش را در استودیو عوض نکرده بود و با همان لباس گل و گشاد و سبیل و کوچک که برای همه جهان آشنا و محبوب بود جلوی ما ظاهر شد. من با چشمان گرد و گشاد شده خود به او خیر شدم. این کیست؟ از خدام جهنم در به محفل خانوادگی ما وارد شده است. می‌گویند که من هیچ وقت سر و صدا راه نمیانداختم. به آرامی شروع به گریه کردم مرد عجیب قد گفت چرا گریه می کنی؟ من باباتم من باباتم اما حتی آن صدای آشنا نتوانست گریه مرا قطع کند بعد دستش را بالا برد و گوشه سبیل خودش را گرفت و نصف آن را از جا کند و گفت نگاه کن من باباتم من باز هم گریه می کردم او قسمت دیگر سبیلش رو هم از جا کند و گفت من باباتم من میان اشگاهی رد گرفتار شده بودم و به این حیولای عجیب که نیمی پدرم و نیمی قریبه غریب قریب منظر بود نگاه می کردم. بعد او بقیه سبیلش رو هم برداشت و سباره گفت نگاه کن من باباتم اما من دیگر گریه نمیکردم بلکه لبخندی خوش بر لب داشتم فرگارد کوچولو که میلیون ها نفر را در سراسر جهان به خنده انداخته بود پسر کوچک خودش را به گریه میانداخت و او را که پدرش را کمتر تر می دید اما دوست داشت از همان آغاز زندگی دوست داشت از فکر اینکه پدرش به شکل عجیب و ناآشنایی در آمده به وحشت میافکند. من بارها با چشم خود می دیدم که خیافی او کاملاً عوض می شد. آنقدر عوض می شد که دیگر شخصیت او برای من غیر قابل درک و دور از دست رزمی نمود. به نظرم اده زیادی من و سیدنی را پسران خوشبختی می مادرمان جوان و زیبا بود. پدرمان در سراسر جهان مشهور بود. علاوه بر این دو پدر بزرگ و دو مادر بزرگ داشتیم. گاهگاهی جد و جد هم کوری برای دیدن ما و تحسین نوشان به خانه ما می آمدند. هم کوری همیشه به پدرم علاقه بود. جد هم کوری نیز با بابا جور بود. اگرچه قبلا قبل از ازدواج پدرم با مادرم با هم اختلافاتی داشتند. هر دو آنها انگلیسی بودند و روشها و عادات مشابهی داشتند. هر دو به اندازه همله جوج و مخرور بودند و جهانبینی مشابهی به خصوص در مورد کودکان داشتند. هر دو آنها می گفتند کودکان را دوست دارند اما به جای خود آنها را دوست دارند. اما جدم معتقد بود که پدرم در این اخیده که دولت باید کودکان را از والدین بگیرد و خودش آنها را بزرگ کند بر خطا می رود و راه افراط میپیماید. این فکر پدرم ظاهرا کمونیستی مینه بود اما چونین نبود. برای اینکه فکر اطاعت محض از حکومت برای پدرم که چنین چونین انفراتمننش است نفرت آور است. برخلاف تصور جدم و نانا این عقیده پدرم به این علت هم نبود که تصور کند کودکانی را که دولت پرورش دهد لوس و فاسد نخواهند شد و تربیت خواهند دید در حقیقت علت این عقیده پدرم آن بود که خودش از بس در کودکی مهنت کشیده بود نمیخواست هیچ کودک دیگری چون این سرنوشتی داشته باشد. او دولت را حیعت عاقل، ثروتمند و بشر دوستی می دانست که هرگز از توجه به کودکان قفلت نخواهد کرد. در حقیقت، این یکی از تئوریهای های غیرعملی و کاملا ایدئالیستی پدرم بود که می خواست مدینه فازلهی به وجود بیاید که هیچ کس در آن رنج نبرد. هر هفته مادر بزرگم چاپلین را هم میدیدیم. پدرم راننده اش را به دنبال او می تا او را به خانه ما بیاورد. یا همگی به خانه کوچک او در دره فرناندو نزدیک هالیوود می رفتیم. پدرم چهار سال قبل از ازدواجش با مادرم مادر بازدک چاپلین را به این کشور آورده بود. پدرم همیشه در راه مادرش فدا بود. وقتی به وسیله دوستان و آشنایان اموزش توانست در گروه تاثیر فرد کارنو کاری مدام با مزد هفته سی دلار گیر بیاورد مادرش را در یک مؤسسه پرستاری خصوصی در انگلیس بستری کرد و وقتی در هالیوود به اوج موفقیت رسید ترتیب آوردن او را به آمریکا داد تا بهتر و از نزدیک بتواند از او مراقبت کند این کار آسانی نبود بیماری روحی مادر بزرگم امکان نمیداد که او تابعیه آمریکا شود زیرا او را به عنوان یک دیوانه اون نامطلوب می که اگر طبعه آمریکا شود، امکان دارد که بخواهد تحت پرستاری دولت قرار بگیرد. پدرم سالها وقت صرف رفع مشکلات قانونی که در این راه وجود داشت کرد. و بالاخره بعد از آنکه تضمین داد، سالیانه مبلغی برای پرستاری او بپردازد، اجازه خصوصی دریافت کرد تا بتواند مادرش را به آمریکا بیاورد. از هفت سالی که او در آمریکا زنده بود بیشتر اوقات را در خانه‌ی اجاره کوچکی نزدیک هالیوود می‌گذراند که پدرم برایش اجاره کرده بود. پدرم به زن و شوهر صاحبخانه پولی می‌داد تا از مادر بزرگم مواظبت کنند و همه یه لوازم دارویی و پرستاری را که مورد احتیاج او بود تأمین می‌کرد. وقتی فهمید مادر بزرگم از دیدن مناظر و سیاحت لذت می‌برد، اتومبیل و رانندش را در اختیار او گذاشت تا او را به گردش ببرند. او هر کاری میکرد تا مادرش راحت و خوش و خورن باشد. همه کار میکرد به جز ملاقات با او. نمیدانم علت اینکه با مادرش ملاقات نمیکرد چه بود. شاید از بیماری روحی غمانگیز او رنج میبرد یا شاید دیدار مادرش تمام خاطرات ناشاد دوران کودکی پدرم را. دوباره در اوزدنده می کرد ولی قدر مسلمی این است که هر وقت مادرش را می دید چونان دوچار نراحتی می شد که گویی تمام بدنش درد می و روزها طول می کشید تا بتواند حواس خود را برای کارهایش متمرکز کند مادرم که از روحیه یه رفت و آمد با خیشاوندان نزدیک سرشار بود اغلب پدرم را ترقیب می کرد که مادر بازوک چاپلین را بیشتر ببیند این ترتیب پدرم هر هفته او را می دید. وقتی مردم پدرم و مادرش را با هم می دیدند، بلا فاصله تشخیص می دادند که آن دو خیلی به هم شبیه هستند. گرچه پدرم سری بزرگ دارند که از پدرش به برده است. دوره جمجمه او هفت اینچ و سربعه اینچه است. اندام کوچک او شبیه اندام مادرش می باشد. همان چشمان آبی روشن، همان لب‌های درشت و همان لبخند خشن و با دستهای باحالت و ظریف او را دارد. مادر بزرگ چاپلین به نظر مادرم و مادر مادرم بسیار جذاب آمد. همه کسانی که او را می‌شناختند همین احساس را در درباره او داشتند. فقط وقتی که کمی با او صحبت می‌کردید می‌فهمیدید که او در دنیای دیگری، دنیای اوهام زندگی می‌کند. گاهی، مادر بزرگ چاپلین از حملات هوای زیپلنهای آلمانی بر لندن در جنگ جهانی اول که او را سخت ترسانده بود صحبت می کرد. گاهی، در پدر بزرگ چاپلین یعنی شوهرش مطالبی می گفت که هاکی از علاقه او بود. گاهی، با جملات آمیز از عشق و علاقه خود به پدرم صحبت می کرد و کلمه پسرم پسرم را تکرار می او هر یز، از روزهای جوانی خودش و پدر بزرگم، از روزهای تیره احتیاج و هرمان، سخنی بر زبان نمیراند شاید آن روزها را فراموش کرده بود اما کسانی بودند که او را در موارد متعدد، همراه پدرم آرامتر، متیتر و متفکرتر دیده بودند اما گاه گاهی حال مدر بزرگ چاپلین بدتر میشد. او هنوز صحنه‌های نمایش دوران جوانی خود را به خاطر می‌آورد و برای ما پیانو می‌زد و آواز میخواند. سپس ناگهان از پشت پیانو بلند می‌شد و آن حرکاتی را که روزگاری سبب موفقیت او در تالارهای موزیک لندن بود، اجرا می‌کرد. دور خود میچرخید و کمی دور از دست, دست های من که به سوی او دراز شده بود، رقص شادی را آغاز می‌کرد. سپس ناگهان جلوی من می ایستاد به سوی من خم می شد که مرا بغل کند، این حرکت همیشه پدرم را به وحشت می پدرم سرش را تکان می داد و در گوشی به نانا و مادرم می گفت، مواظبش باشید نگذارید بغلش کند، ممکن است اشتباهاً او را از پنجره به بیرون پرد کند، نانا و مادرم بیهوده میکوشیدند پدرم را قانع کنند که ترسش بیهوده است و خطری مرا تهدید نمی کند و در کارهای اساسی میتوان به مادر بزرگ اعتماد کرد اما پدرم قانع نمی شد زیرا تخیل او گاهی اوج میگیرد و از عادی ترین امور وحشتناک ترین وقایع را در نظرش مجسم میسازد